درد ما را نیست درمان من، الغیاس. هجر ما را نیست پایان، الغیاز دین و دل بردن دو قصد جان کنند، الغیاز از جور خوبان، الغیاز در به های بوسی، جانی طلب می کنند این دلستانان، الگیاس. خون ما خوردند این کافر دلان ای مسلمانان چه درمان الگیاس همچو حافظ روز و شب بیخیشتن گشتم سوزان و گریان الگیاس